نومی کردن وزیر مریدان را از رفض خلوت آن وزیر از اندرون آواز داد که مریدان از من این معلوم باد که مرا ایسا چنین پیغام کرد که از همه یاران و خیشان باش فرد روی در دیوار کن تنها نشین و از وجود خیش هم خلوت گزین. بعد از این دستوری گفتار نیست، بعد از این با گفتگویم کار نیست. الودا ای دوستان من مردم، رخت بر چارم فلک بر بردم، تا به زیر چرخ ناوی چون حتب من نسوزم در عناب و در اتب، پهلوی ایسان نشینم بعد از این بر فراز آسمان چارمین،